آمد آمد ندا انداز خانه ما که رند خراباتی دیوانه ما برخیز که پر کنیم پیمانز می زن پیش که پرکنند پیمانه ما امشب بر ماست که آورد تو را و از پرده بدین دست که آورد تو نزدیک کسی که بیتو در آتش بود چون باد همیجاست است که آورد تو این دهر که بود مدتی منزل ما، نامد به جز از بلا و غم حاصل ما، افسوس که حل نگشت یک مشکل ما، رفتیم و هزار حسرتن در دل ما. ای خاج یکی کام روا کن ما را، دم درکش و در کار خدا کن ما را، ما را اسر و لیک تو کج بینی رو چاره دیده کن رها کن ما را.